مجلی رادیویی نگاه ها با اندیشه ها فرنگی سربیبی با منوچهر جمالی پجوهش کرد در فرهنگ و زبان ایران باستان گفت گفت مرغ دل هر که از برون از جنگل مرغ دل هر آشق که از بیز برون آیت از جنگل تعجیلش تاخير حميدرت این شعر را از مقاله شما آقای منوچهر جمالی بر گرفتم تحت عنوان مرغ در فرهنگ ایران که کندوکاویست درباره عمق معنایی واژه و سمبل مرغ در ذهن و ادبیات و اساطیر ایرانیان مقاله است بسیار کارشناسانه و جالب چون انسان را به حوزه‌های از فکر و تصویر منتقل میکنه که با مشغولیتهای فکری کنونی بسیار فاصله دارد خلاصه به یک معنا انسان رو پرواز میده. خیلی ممنونم آقای جمالی از شرکتتون در این گفته گووی کوتاه لطفا اول بفرمایید که مرغ در چه شکل هایی در فرهنگ ایران تجلی پیدا میکنه کنید. اساسا مرغ مربوط است به تصویری که آنها از انسان داشتند در انسان یک نیروی متعالی میدیدند که اسم این رو امروزه ما فروهر میگیم یا فروهر یعنی نیرویی که به بالا رونده اینها عقیده داشتن که این سی مرغ یا سمندر یا قغنس یا هما یا انقا که اینها همه اسمهای مختلف خود همین اصل هستند این مرغ در هر انسانی هست و این مرغ که اسمش در عوستها و اونجاها ارتا فرورده ارتا که بعدش به صورت هما یادآوری شده اینا عقیده داشتن که خدا مثل یک خوچه ایست مرق یک خوچه ایست این دانه هاش افشانده میشه تخم این مرق در تن هر انسانی هست اون وقت تن هر انسانی عملا یه ای هست که این مرق درش هست اون وقتی این ارتا که به حساب در مرق زمیر انسان بوده این همونه که مولوی میگه تو مرق چهار پری تا براسمان پری تو از کجا و ره با مونرد و, و کجا یعنی تو رابطه مستقیم با خدا با حقیقت با سی مرق داری و اینا عقید داشتن که در درون انسان این بون انسان همین ارت ها فربد همین سی مرغه. البته معنی این ارت که بعدش در نوشته جات هخامنشی ها تنگ نوشته ها اینها میاد یکیش معناش راستی بوده یکیش حقیقت بوده و یکیم مهروداد بوده یعنی در درون هر انسانی راستی و حقیقت و مهروداد هست و این از خرد منوی از خرد بنیادی کیهانی در درون انسان پیدایش شفته و اون وقت اینه که این مرغ هیچ وقت مقلوب نمیشه بله، آقای جمالی شما همچنین در مقالتون میگید که مرق مظهر تحول نو شدن و اصولا مظهر ناگونجایی انسان هست یعنی میل به بیرون آمدن از خود و در واقع شما میگید که این همون مفهوم پیروزی هست چون تحول یعنی پیروزی و نه یعنی غلبه کردن و خرد کردن دیگری ببینید مسئله اینه که این که در درون ارتون هست خون شروع میکنه در بیزه جوجه رو ایدن و بزرگ شدن انسان به یه معنای دیگه همیشه آبستنه همیشه آبستان به معرفت تازه است آبستان به یه اندیشه تازه از راستی از حقیقت از داد اونها هست اینه که همیشه این ناگونجایی سبب پرواز میشه این مرغ یه دفعه پرواز نمیکرد در آخر عمر بلکه مثلا در شادی در بینش، در اندیشیدن در خوشی، در رفت از درون انسان پرواز میکرده اینه که مولوی میگه درون بیزه چون مرگ پر رو بال گرفت بدون که بیزه از این پس هجاب اوست است. انسان وجودی ناگونجا در خود این بحثی رو که شما شروع کردید این نوشوی و نوزایی من این رو درباره داستانی که میگویند سمندر مرغش که سوخته میشه و خاکستر میشه و این خاکسترش بعدش از سر مرغ از این برمیخیسه شما در همین واژه خاکستر که نیاخونید مطلب روشن میشه چون که خاکستر خاک هاگه خاکینه یعنی تخم استر یعنی پاشیدن خاکستر یعنی تخم پاشیدن یعنی چی؟ این سیمور فراز درخت هستیه این تخماش رو که میپاشه این استر در روی زمین کاشته میشه و رویده میشه لطفا خیلی کوتاه بفرمایید که شما از چه منابعی استفاده کردید برای انجام این پجروهش هایی که صحبتش رو میفرمایید اصلا اصل معاخذ نیست معاخذ در دست همه هست مآخز من یکی شاهنامه هست یکی بندهش هست یکی گزیده های زادست هست یکی عوصه هست ولی اصل اینه که شما چه متودی چه روشی به کار میبرید اون چیزی رو که من پجوهیدم اینه که این فرهنگ زن خدایی رو در دوره های میترائیس و در دوره های اینها را سرکوبی کردند. داستان همه به صورت تحریفی هست و برای یافتن این تحریفات شما از واژه‌هایی که در گویش‌ها یا در زبان‌های مختلف هست می توانید بهره ببرید ببینید که این ها این واژه‌ها معانی دیگه داره و کار تخصصی شما چی هست آقای جمالی کار تخصصی من فلسفه است در آلمان تحصیل کردم و فلسفه نزد پروفسور ادورنو و هورکهایمر در فرانکفورتر چوله در اونجا تحصیل کردم و بعدش دیدم که فلسفه ایران بدون بازگشت به فرهنگ اصیل ایران نمیتونه باید بگیره از جمعه استادان من در آلمان در تووینگن پروفسور شاده والد بود که نشون میداد که این واجه های فلسفی چجور از ریشه های یونان در آمده و این واجه ها در از چه معنایی داشته من این روش رو پیدا کردم و شروع کردم به تحقیقات نوین در فرهنگ ایران که اساساً برپایی زن خدایی یعنی فرهنگ سیمرغی بنا شده و و الهیات زردوشتی اینها یکی از بزرگترین موانع برای درک اینهاست شاهنامه خیلی به مدد ما میاد و از گویش ها و از باجه هایی که در زبانهای مختلفی مثل کردی مثل پشتو فلان اینها باقی مونده از اینها میتونیم مدد بگیریم و تمام این فرهنگ رو بازسازی کنیم فرهنگ زن خدایی ایران تنها فرهنگی که ما آینده را با اون میتونیم بسازیم بسیار خوب آقای چهره جمالی از اینکه در این گفتگو شرکت کردید خیلی خیلی ممنونم